انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما ایسای مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است ترجمه شریف از مدتها قبل احساس می شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلا مورد استفاده قرار دارد ترجمه قدیم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 هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و نجات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرحهایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد انجیل لوغا فصل اول تقدیم به عالی جناب تیوفیلوس تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقاع که در بین ما رخ داده است اقدام کرده اند.بانچه را که به وسیله شاهدان عینی اولیه و ماموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردن من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقاه را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافتهی پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی می کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می‌کردند. اما فرزندی نداشتند زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان، قرعه به نام او اسابت کرد که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهارپایه بخور ایستاد زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید اما فرشته به او گفت ای زکریا نترس دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیا خواهی نامید، شادی و سرور نصیب تو خواهد بود، و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود، و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد، از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود، و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداون خدای آنان باز خواهد گردانید، با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد زکریا به فرشته گفت چطور می توانم این را باور کنم من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است فرشته به او پاسخ داد من جبرائیل هستم که در حضور خدا میستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم، پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست، باور نکردی، جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد مان متعجب گشتن، وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند، ایما و اشاره می کرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید، به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامل شد و مدت پنج ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت، این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوای مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه ششم، جبراییل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد نام این دختر مریم بود فرشته وارد شد و به او گفت سلام ای کسی که مورد لطف هستی خداوند با تو است. اما مریم از آنچه چه فرشته گفت بسیار مسترب شد و ندانست که معنی این سلام چیست فرشته به او گفت ای مریم نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را ایسا خواهی گذار او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم فرشته به او پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب میآمد اکنون شش ماه از حاملگی او میگذرد زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست مریم گفت باشد من کنیز خداوند هستم همانطور که تو گفتی بشود و فرشته از پیش او رفت در آن روزها مریم عازم سفر شد و با شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودی رفت او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد وقتی الیزابت سلام مریم را شنید بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت. تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است سمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید. همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید مریم گفت جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی میکند. چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند. زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی را برای من کرده است نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او میترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گروسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را توهیده است روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است. همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد. مریم در حدود سه ماه پیش الیزابتمان مان و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد، وقتی همسایگان و خیشاوندان او باخبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتن، پس از یک هفته آمدن تا نوزاد را خطنه نماین، و در نظر داشتن نام پدرش زکریا را او بگذارن، اما مادرش گفت خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او درباره این نام طف چیست؟ او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدن و کلیه این اخبار در سرتاسر کوهستان‌های یهودی انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدن، درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند: این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داود راننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد. و با پدران ما به رحمت رفتار نماید، و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد، برای پدر ما ابراهیم سوگن یاد کرد که ما را از دست دشمنانمان نجات دهد و انایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده عبادت نماییم. و تو ای فرزن، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار میشوند زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می‌برند و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید، و اما طفل بزرگ می و در روح قوی می و تا روزی که علنن به قوم اسرائیل ظاهر شد، در بیابان به سر می برد.